مگان پنجشنبه هفتم مارس 2013، عصر، اصر اتاق تاریکه هوا سرشار از بوی تن ماست ما باز توی مجموعه هتل سوان هستیم توی اتاق زیر رخبام گرچه این بار فرق میکنه چون اون هنوز اینجاست داره به هم نگاه میکنه ازم میپرسه دوست داری کجا بریم؟ بهش میگم یه خونه ساحلی تو کاستادیلالاس لبخند میزنه قراره اونجا چیکار کنیم؟ میخندم منظورت اینه که تو به این موضوع فکر نمیکنی انگشتاش آروم رو شکمم حرکت میکنه فکر نمیکنم بهش ما یه کافه باز میکنیم، شوی هنری اجرا میکنیم، موج سواری یاد میگیریم میگه تایلند چی؟ بینیم و چین میندازم. میگم یه عالمه بچه با سن و سالای مختلف سیسیل تو جزایر اگدی ما یه بار ساحلی باز میکنیم و میریم ماهیگیری. دوباره میخند و بعدش میاد روم و منو میبوسه زمزمه میکنه غیر قابل مقاومت تو غیرقابل مقاومتی میخوام بخندم میخوام با صدای بلند بهش بگم دیدی دی من بردم. من بهت گفته بودم که این آخرین بار نیست. هیچ وقتم آخرین بار نمیشه. لبم و گاز میگیرم و چشامو میبندم. حق با من بود. میدونم که حرف درستی زدم، اما گفتنش خوب نیست. توی سکوت از پیروزیم لذت میبرم. لذتش تقریبا همسنگ لذتیه یک از لمس خودش میبرم. بعدش باهام یه جوری حرف میزنه که تا حالا اونجوری حرف نزده همیشه اونی که مدام حرف میزد من بودم اما این بار اون شروع میکنه به حرف زدن راجب حس خالی بودن میگه راجب ای که ترکشون کرده راجب زنی که قبل از من باهاش بوده و یکی قبل از اون یکی که با الکلی بودنش اونو داغون کرده و بعد با ای که تو وجودش باز کرده بود ولش کرد و رفت من به نیمه ی گم شده اعتقادی ندارم. اما درکی بین ما هست که قبلا حسش نکرده بودم. یا لاقل نه برای مدت طولانی. این از تجربه مشترک نشی میشه. از اینکه میدونی یخ احساس شکسته شده. حفره درون، این چیزیه که من میفهممش. کم کم باور کردم که چیزی برای تلافی وجود نداره. این همون چیزیه که من از جلسات روان درمانی فهمیدم. خفره زندگی ابدیان باید اونارو دور خودت باز کنی مثل ریشههای درخت که دور تا دورش به هم چسبیدن باید خودت کال بده تا تو از توی رخنه ها و درز و شکاف بیرون بکشی این تمام چیزیه که میدونم اما به صدای بلند نمیگمش حالا نه ازش میپرسم کی میریم اما بهم به جواب نمیده و بعدش خوابم میبره و وقتی بیدار میشم میبینم رفته جمعه 8 مارس 2013 صبح اسکات برام قهوه آورد تو تراس دیشب خوابیدی اینو که میگه خم میشه و سرمو میبوسه پشت سرم وایساده دستاش رو هامه گرم و سفت سرمو به سمتش عقب میکشم چشممو میبندم و گوش میدم به صدای تلق قطار روی ریل تا وقتی که درست جلوی خونه توقف میکنه اون نوایل که اومده بودیم اینجا اسکات برای مسافرات دستکم میداد که همیشه منو به خنده مینداخت یکم سفت رو شونه هم چنگ زده خمیشه جلو و گردنمو میبوسه دوباره میگه خابیدی باید احساس بهتری داشته باشی میگم احساس بهتری دارم میپرسه فکر میکنی این جواب بده روان درمانی منظورت اینه که فکر میکنم درست بشم میگه درست شدن نه و میتونم آزردگی رو تو صداش حس کنم. منظورم این نبود. دستمو بالا بردم و حولش دادم. میدونم. فقط محض خنده گفتم. فکر میکنم این یه رونده. ساده نیست میدونی؟ نمیدونم نی که زمانش میرسه که بتونم بگم این روش جواب داد. اینکه من بهترم. یهو یه سکوت میکنیم و اون یه ذره محکم تر فشارم میده. میپرسه پس تو میخوای بازم بری؟ و بهش میگم که آره میرم. یه وقتی من فکر میکردم و میتونه همه چیزم باشه. میتونه برام کافی باشه. سالهای سال اینطور فکر میکردم. در بست آشقش بودم. هنوزم هستم. اما دیگه بیشتر از این نمیخوام باشم. فقط وقتی همچین احساسی دارم، وقتایی مثل بعد از اون تابدار دیروز که از اون همه گرما و خفگی جون به در بردم، خودمم گیج میشم. کی میگه من یه بار دیگه عاشق میشم و میفهمم این کافی نیست؟ کی میگه تو این راهی که درست حالا در پیش گرفتم، مدام حس پایان به هم دست نمیده بدون امنیت با خودخوری؟ شاید من بخوام دوباره شروع کنم و دوباره و بالاخره بازم به انتها برسم. با این اقرار قدیمی که هیچ جایی برای رفتن نیست. شاید. شاید نه. شاید باید خطر کرد. نباید؟ وقتی داش میرفت سر کار رفتم پایین تا باش خدافیی کنم. دستاشو دور کمرم حلقه کرد و سرمو بوسید. زیر لب گفت دوست دارم مگ. و من بعدش احساس وحشت کردم. یه حسی مثل دوست داشتن بدترین آدم دنیا. نتونستم منتظر باشم تا درو ببنده چون میدونستم الانه که گریم بگیره